اه اه قسمت از این قسم دوم تسقیر تسقیر الجم اگر میخواییم جمی رو به چه ببریم تسقیرش رو درست کنیم امثله دو گروه از امثله رو آورده به خاطر این که جمع قلت داریم و جم کسرت امثله گروه اول جمع قلت هستند امثله گروه دوم جمع کسرت هستم احباب و حیباب انهر و انهير اعمده وعامده غلمه غليمه كواتب كو جبال جبيلات بيبيينيت جمع مؤنث اصلا تصغيرهم اون جبال هست ولي تصغيرش چاست جبيلا بله الان توضیح میده که چرا سننا سوینعون وعمله اولمون بله میگه در قاعده 214 کتاب جموع القلتی تصغر الا لفظها جمع های قلت تغییر میشون بر لفظشون لفظشون تغییر نمیکنه همون لفظ خودشون تصغیر میشه احباب احباب انهر و انه نیر و باله و اتفال و تفال خانه؟ بله چطور؟ اتفال و تفال اینجا هم آورده بر وزن خودش آورده اگر جم جم قلت باشه بر همون لفظ خودش اسم تصفیرش درست میشه اما جم کسرت نه و جموع کسرتی یوسف غرو جمع کسرت یا کسرت مفردش اول تسغیر میشه مثلا جبال مفردش چه هست جبال بعدش علیف و روش میاریم میشه جبالات و جمع و جمع کسرتی و سغر جمع کثرت مفردش تسغیر میشه مفرد جبل چیه مفرد جبال جبله جبلشو تسغیر میکنیم میشه چیه جبال. جبال. خوب جبال جبال جبال جبال نمیشه بله جبال جبال اول مفردش میشه جبل جبل رو دیگه بیا تأثیر کن مم. این داره این حرفو میزنه مم. میگه و جمع کثرتی اوصغر و سغر مفردوها و جمع کسرات و مهم ایده ادامه رو داریم میگیم و جمع کسرات مفردش تسخیر میشه ثم تجمع و جمع مؤنث سالم بعد از اون میاد جمع مؤنث سالم بسته میشه كان مهنسا اگر مؤنثی بود اگر چی بود؟ مؤنثی بود او مذکر غیر آقل یا مذکر غیر عاقلی بود اگر مؤنث بود یا مذکر غیر آقل بود مانند جبال پس با علف و تا بعدش جمع بسته میشه و جمع مذکر سالمان و جمع مذکر سالم بست میشه اذا کان مذكرا عاقلا زمانی که مذکر آقلی آقل بود مثلا عمله جمع هست برزن فعله، جمع مذكر سالمش میبندیم اووی ملون سنه سو سوئ نعون جمع مذاکر بسید شده است خاطر اینکه این برای عاقل هست پس این قاعده چیز خاصی نگفت گفت, گفت آقا اگر ما جمع رو خواستیم تسغیر کنیم اگر جمع قلت بود همون لفظ خودشو چو تسغیر میکنیم همون لفظ خود چی میکنیم تسغیر میکنیم مانند احباب و حباب ولی اگر جمع جمع کسرت بود مفردشو مفرد پیدا میکنیم مفرد اون جمع رو همون مفردو رو میان تسخیر میکنیم بعدش میان جمعش میبندیم اگر برای مونسی بود یا غیر آقلی جمع مونس سالمش میبندیمونو و اگر برای دلالت برمذکری آقلی کرد میوم جمع چی بهش میبندیم جمع مذکرش میبندیم جمع مذکر سالم این هم اما از قواتب مفردش چی میشه مفردش؟ کتبون؟ مفردی کتب نمیشه کتب خودش جنه کتاب میشه هم؟ کتاب میشه نه کتاب نمیشه کتاب؟ چه بود؟ می‌خوابید میشه. میشه آره بله. بله. بله. بله پس این شد از تسخیر جمع ها